من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله على سيدنا رسول الله مقاطق تخت آمان سبدال مومن بود خب یه نهلای صحبت شد یه خاصله زمانی شد یه به نحوه اجمال آده برس بشه تا درس خوشن بشه از سبب این که انابینی که ما در اینجا داریم که عنوان اولی سبه خود سب در قرآن در مورد سبه آدهه بکار برده شده که این محل برس نیست و سبهش نصبیه یعنی تا نیست که او یک مطلقاً جایز نباشه احتمال داره که جایی که اصل عمل دنبالش باشه الله تصب الذين يرون من دون الله يصب الله عددا بغیر علم احتمال داره که حدیث مبارک ناظر باشه به مواردی آیه مبارکه ناظر باشه به مواردی که به اصطلاح اصل عمل اما ایشون این مجتمع گروه نشه تشیع هست ظاهر آلیه مبارکی این. حالا اون بحث دیگه بیست بحث عقلی که شاید به کار بردن الفاظ سر در شرق موضوع بعضی هاش عقلی از هم طبیح. حالا مالا آلهه باشه غیر اون بحث دیگه بیست فقط بحث قدلیه سمیهیه رو پرستان چند و عنوانی که مربوط شیف و در صدر مومن این غیر و آلهه این عنوان ارز در روایات آمده و ثابت سنی و شیعه درست عنوان دیگری که بود عنوان لحن المومن بود این هم در روایات در سنت آمده خود در روایات ما یه چیزی که لازمشه آمده خود لحن در یک نسخه آمده که در روایت هم در زید روایت اون روایت با سر یا آمده اون زید رو نداره این یعنی خیلی ثابت ثابت نیست البته این هست، مضمونش اینه که اگر انسان مؤمن رو لعن کرد اون لعن میونه اگر در اون مؤمن صفت بر بود در اون شخص می اون میخوره به لحاظ به خود قائل نمیگه چه در اما از باه بعدا درشنش اما اینکه لعن مؤمن روز به این عنوان نداره بحث سر عناوینی هست که در اینجا مطرح عنوان دیگری که در اینجا مطرح شد ب بود هر که عنوان سببال موتا در میان رواقه احسانت داری حسانید متعدد هم داره و حتی من از بعض افراد منحرک مثل محیرت نشان و اینها هم دار که موتا موتا خوبی و سا... ساببال موتا عنوان ساببال موتا هم داری که این رواقه ساببال موتا به عنوان سببال مومن پیش ما این همون روایت در کتب اهل سنت با عنوان صابر مومن آمده و صابر موتا اما در روایات ما نیامده و شد که سبب موتا هم با ملاحظه مجموع روایاتی که اهل سنت دارن این دو قسمه یک قسمش که از کلامات په همبر ناظر شده ناظر به شبیه سبب آلهه میبونه یعنی به همبر که موتای اینا رو سر مثلا یه بود خدا لعنت اینا رو رحمی شده چه پدرش ناراحت میشه ببینید اصلا عمل واردش ما داریم در میان مصادر احسان ما نداریم که من ما یکی هم جایی که صحب الموت اصول وقتی شخص مر صد بشه نکنید اینم داریم در اهل این هم داریم داری. اما ما نداریم ان در جایی که خیلی متعرضون جلسه صحب الموت صبا الموت بشین. انشاءالا اونجا این توضیح بیشترد عنوان دیگری که در اینجا هست سب و صحابه با عنوان سب و صحابه این عنوان این عنوان الان ما در رواست خود ما نداریم اصلا این عنوان و با این که در مواردی آمده که امیر المومنین نهی ارسم کردن تعلیم نکردن سب و صحابه نکنیم مثلا وقتی که در جنگ تفین بود و شریعت که اصحابشون دارن لعن می‌خوان چب میکنند در حالی که لغ هم رحم پس پس و اصحاب ماویرا رو خود بحث ماویرا در مورد صحابه است دیگه یکی از فقیر اصحابش ماویری هر اددی مثلا واسه اون هم پس پسر امام عبدالله باش درو صاحب دیگه و این دیگه از صحابه که با او بوده مثلا رحمان بن با او بوده چون این صفحه تفکرات ماویر در نتیجه این جستفین بود یا نه؟ بر مثلا که نماینده است. اصحاب خواهر از کنار گذاشته. او ما نه تمام نمیخواد در ثوابه میگه یه روزا بیران کافی شاید دوست داشتی که بعد دو از این فیلم هم رنگال بینیم، ما خدا لات پدرش مسلم نشد ولی ما خدا معایبی مسلم شدیم. ابو سعیان نشد. اصلا که آمده بوده، مهدی ابو سعیان ابو سعیان نخو فارم معایب است، باید گفت اصلا خدمتون که پیرو امیرالمومنین این داوطلبان تکونش شب تامین ثبابین. نکام نشده استفاده نکن، میخوایی نمکسله، قطع کنی. عنوان ما دنبال یک عنوان این عنوان سبب صحابه در روایات ما چه سلون چه ایجابه در روایاتی که ما الان داریم مشکول بله یک روایتی هست که منسوب است به یکی از این صحاق رضا منگر صحاق رضا چون این سعیفتار رضا اصلایی کتاب نیست افرادی از حضرت رضا مجموع احادیس رو زبط کردن که آنه یکی شماسا مشکول شده سعیفتار رضا همشه و توضیح همه که صاحباً ارز کردن من سبب نبیم قتل و من سبب صاحب نبیم جلد اینه داره در روایات ما اما از کردن است که از حضر رضاست در آبیاش افر سنت هم اینم صاحب نبیم عنوانش اینطوره من سبب نبیم قتل و من سبب صاحب نبیم جله این رو ما داریم در مسابر ما به نظرم توی عمادی شیخ و توصیبی در از این اتبای اینجوری آمده که به لحظی سنگیه ما مشکل داره اما داریم اما احل سنت از نسبل جرفر چون این رو باری که ما داریم از حضر رضا مصبل جرفرن عبی عابایی این رسول الله اهل سنت بدون احل سنت رضا از نسبل جرفرن عبی عابایی منصبه اصحابی توره اینم اهل سنت مرکن. از این ما هست ما در مسابقه ما این یکی نیست از کنه اون رو در کتاب بوردن در جامعه سخیر به سادسیویتی عبرده او اونی که الان با عنوان قدقته این صاحبان نبی اصحابان نبی مال ما ماداری اینه از سنت حدیثی دارن منصف به اصحابی فعلیه لعنت الله والملائکه الملائکه و نازه این هم دارم عنوان اصحابی به این عنوان هم در مفضل احل سنت هستن بسید که در جفنیم شیخ اومد هر حال هست عنوان از و اما در خود احل سنت دفت میکن. این که چیه مثلا شلاق زندان برد شو این رو ندارن خود احل سنت ندارن این فعلی اللہ رسول الله اهل سنت درباره این که اگر کسی سحابه به نمبر رو صد کرد باش شلاق و خلال زندان بره این رو از اهمه ما نهاره کردن خودشون ندارن از موسط آبایی از ما آزن نهاره کردن نه که خودشون داشته باشن دفرقه. نه غیره علیه درن علیه حمد الله این راجع بگیم اما باقت نظر از عنوان این مسئله قهت هم جزا مسئله بوده که از همون زمان معاویه یعنی از بعد از سال چهل این دیگه مبسلافه جامعه اسلامی بود این هست. اما نه به عنوان صحابه به عنوان اشخاص دقت بگنید مثلا سب میکردن معاویه رو یا لعن میکردن اما یکیم مسلم لحمش مسلمه حضرت همیران نفرمونده اگه شما صد نکنینه اصحاب مهادی ها شما صحابه هم صحابه و صحابه هم اصلا صد باشد، شد امر فرهندی نیست امر خلاف فرهندی یه امر خلاف عقل نه از راه صحابه هم و از کردین اولین کار یعنی که شروع شد بعد از جریان مهابیه در مدینه هم این کار این همه سلمت هم داره سنگه هم صحیحه. در مصدر حاکم آمده به اصناد صحیح ولی ازا امن سلمن مقابل این اصلاد خوب دفع کنه امن سلمن مقابل این اصلاد نه به عنوان صاحب نبیه به عنوان شخص خیلی این خیلی مهمه. یعنی این ذرافتها رو در فقه مراعات بکنه در مصدر که حاکم داره که دخلق علاقه مسلمه فقالت ما لکن تصرمون رسول الله چرا رسول الله کن گفتم یا اما چه گفت که همه از رسول از اون منصب و علیه این این یعنی شما داریدیم بینید نه برموند اون مسلمه که پیغم منصب به اصحابی بزرم پس در باب صحابه دو بحثه یه بحث رو انقام صحابه و ما نبیدیم یه بحث روی مفردات و اشخاص اون دو تا بحث خیلی نم و مفردات داری به ذهن منم این طوری ها. این که از همه احسانه که سبب صحابه کفر شرکه اول به خود صحابه برنید. اصلا من چه خود صحابه برن. برن. اصلش نه معاویه که نفر بودش اصلا معلوم به طور که مدینه بوده معاویه بکنی معاویه چیه معاویه پای برزارش میدونم اما این معلومیشو ما از تصابون ر مدینه برای صحابت رو ندیده و چنا این مطلب جا افتاده بوده با این که اون مثلا رسمن مخالفت میکنه حدیث پیغمبرون دست بردیشون دو از کار پس این مطلب واقعا ما در تاریز هر کسی که عید میکنه افر خودش خودش موسیقی اون عیده این مشکلی کیونه بودن که چیه صده صحابه میکنه در مشکن کنه من چند دفعه از کردم انصافاً من کلمات اهل سنت خیلی خیلی داشتم در مواضع تقریبا تمام شبهات دیگه بر دارن جواب داده شده و قابل جواب اله در مساله کتب این یه یکی مونده همه قابل جوابه واسه اهل رجع هست توبه هست،, هست. هست خیلی هر همه سوالی جواب هم دررسی نصیفه چه تعقیب دارن که متاسفانه تقره داشتیم بود کشوری که تو می‌جویان یکی تو ما این یه نسلی اونجا که جوان شرکت کرده می‌شیست، آبر چند با قبل می‌کرد، اما تا اینکارا بود, بود. بود. گفت نه ای آدم بود، کوچنایی معلوم کرد که کوچنایی اصلاً بودیم، عربی بود. اردنی از برها این مشکل اساسی شد. الان هم تمام بحثاشون از این موضوعی اما اون بیشتر سر صحابه است ما تصادف روزگاریه مسئولیت تاریخی اولین چیزی که اساس صدر اسلام بودش همون صحابه مدینه به خود صحابه در مدینه چون من مدینه رو یک شهر محسوس می‌دونن دار الهجره می‌دونن می میگن به است از سال خیلی دور نیست یعنی هم صحابه موجود بودن هم در مدینه در سال 40 و 56 هنوز یک جامعهی که بزرگان صاحبه جابن عبدالله بود بزرگان صاحب موجودن دیگه ابن عباس هست علامه شده ابو حررت این از این عبارت من میشه که با این که ام سلمه مخالفت کرد با مخالفت ام سلمه مرزال خسته چار تدیر نشد از با حدیث ام سلمه در از اشتار منصد و علیه بعد به هم می‌گردد که بعدشون من سبعلیان اونم تو تو جا ما خوندی گونه میشه سم. سه تا حدیث در خب به داره من سه تا حدی. ما در اون نوشته هستن یک حدی این, این یکی هم این تنها عدیس صحیح معتبرشون در باب صدب صحابه همینه که بشم عمل نکرده خوندیم اون روز اقایشون رو آوردیم خوندیم توضیح دادیم و از کردیم مثلا ما اقوال اهلسانت رو خوندیم از شرق مال منابی مناوی گفته بله اتفاق برن که برای بله صدب صحابه اینطوره لکن زهر به جماع هستن خصوص عبی و عمر خارجن هستن صدبون ها موجبه فهم. و زهر جماع اصلاح استسناحه اصلاح در در اینکه عمر را حسنه گفتم اونان سب دقیقه نبیشانه در خیلی اینکه آیه به باید اصلاح برگیه نبی کاره این داریم این فتوا هم باز عمل صحابه است اصلا سر این فتوا چرا به عنوان فتوا پیش اونها در که سب دقیقه یک چون صحابه سب کردن مشکل به برد چون صحابه این کار کردن چون نهیده که صحابه سب برواقی عمر بکنن یه حدیثی هم روز شده منصب عبابر که عمر توی کتاب جامع سقی باید توی مثل. یا مثلا منصب که کفر یا قتل منصب عمر قتل منصب به عثمان جره منصب این که بین علی نرگاه، این کون را داره و احلیه فقط صبه نیم منصبه نیم فقط صبه الله هم حتی به عنوانی قوم ندارن که صاب علی احلیه خیلی عجیبی این مفضل باره. حالا کار به حدیثش نداره تو مقام الفتوان میشن صاب و حسنه یکتر، اما صاب و احلیه لا ما با اجتعاد صحابهی جواب این تمام برمیگرد، مشکل کار چی چون میفهمن صحابه ارنم در مدیره بسیار در میتاله بود؟ بسیار موجبه خفت اینو اشتهاد اشتهاد چه مشکل باب باز باب اشتهاد باز شد بگیگه آنم اشتهاد کنم؟ این مشکل رو که صد علی قرمی از این صحابی رو خود صحابه بزرگم و اینقدر این قوی بود که نه در پتباه منعکس شد و با مخالفت در اون سرنها و مهمونی باز هم پایده نگید الان که به ما که ها خود دقیق بکنید راجع به صبب صحابه به عنوان صبب صحابه اهل سندر حدیث دارن البته یه بحث کبرری داره که چون یه می کنم از بحث کلن خارج بشیم و مناسبت نیست اصلا بحث صحابه و عنوان صحابه به این چی اطلاق شد؟ و این چه عرفش قرآنی داره افتیزا و چه عرفشی در روایات داره یه بحث جزاغانیستان نمی من با بحث اون بحث الان روی چون سبل هستیم بود اماغین باید یه که و آشرا و نی هاشم نم و کبارنا زیاد دیگم <تصفيق> زیاد زیاد نمی کنم کنم زیاد نمی کنم زیاد نمی کشیر زیاد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تص> <تص> دراشکه شیعه دیدناره است اصلا که یکی پس سب صحابه دو عنوانه اهل سنت در این بار حدیث دارن فقط علیه لعنت الله حکم رضایی چی, چی ندارن دارن که یا مصطفی را معذوب نشه یا هر و ما هم داریم بعد از علی و موسی اینجا داره منصب صاحب به نبی جلوی خیلی عجیبه در این جرس صد صحابه فقط ما حدیث اون خود اونام ندارن کلا ندارن اما روی مفردات چرا داریم مثلا امیر المومدی دیر که ازها مواهیر صد میکنن لا قهف با هم سکون و صدبادون چطانی داریم صحابه شخص علیه فرساله به صد میکردن دارن که خونده برای شخونده روی افراد دارن حدیثم دارن مثلا منصب و عباقر و عمر فقط کبرد داریم خودشان روزن زعید و جهلیه اما دارن منصب و عباقر قتل منصب با عمر قتل منصب با عثمان جلید منصب و علیه جلید این هم دارن خودشان میگن تریفه این ما خواهد میگن قبول دارن مفردات دارن منصب و علیه فقط سردن این فقط این سریعه رو مفردات صحابه سریعه ما علیه نمیکنه. از ام سلمه رسول الله خب این ترک کلیه بحث رو ببینیم که چی موجود دارید و چی میخواهی نتیجه بگیریم این هست در رواهات ماه همی رواهات که فرمودن این رواهات واحده است که در کتاب کشی مرحوم کشی در ترجمه به مناسبتی در ترجمه کومیت این رواهات رو آورده رواهات که ایشون مرحوم کشی آوردن در ترجمه کومیکتن اثر کمیت ارضی این در این نسخه ای که به اسم اختیار معرفت رجال به معروف در کشی که خدا رحمت و انوار رزوان رضوان الله تعالی علی خیر زحمت نسخه خوبی چاپ شده این نسخه و این رو به حساب اول در نقراب یک هزاره درشیش توصی در مشهر گرفتن زانشتر در علاقه اون چاپ کرده این نصفه رو اول نجور چاپ شده اصل هم خود جداروان چاپ ده اصل چاپ ده. اولش ما رو اون زمانه من همون نسخه اصلی چاپ اصلی چند نرمون کنم ایشون در صفحه دیویست و شیش. از این کتاب این ببینید بعد دویست و پنج این متن دویست و میخونم تا بعد بقیه شما حدیث شماره نصر بن یا صبا الان من اسم دقیق این را میبودم چیه قال حدثانی اسحاق بن محمد البسری قال حدثانی محمد بن جمعور قومی این چاپ شده یعنی از کتاب رو کشی؟ خیلی اشکال داره نه یکی یکیش همونی غلطه اینجوری دیاد باره این قومی نیست امیه امی امیرم به تشرید نخونید بنایه هم یکی از اشایر بسره است اشون مال بسره است حسنان جمهور محمد ابن جمهور فمیه بسری قال حدثنا موسدن بشار الوشا ان داوود بن نعمان این سره است بقیه شکری برشون خواهر سر خیلی, خیلی خرابه ده این که بیشت یک کم دخل کومیت فعنشده رو شعر جلو حضرت خون و ذکر نحن و آن یه بحثیه که راجبی شعری که حضرت می فرماید ثم قادفی آخری امام صادق فرمودن ان الله عز وجل با این که حدیث احضرت روی زعیبشم مطمئن بسیار عالی داره این حدیث چی بینه اصلا بیش تابلوش کنه به قول موزیان این الله عز وجل با و معالی الامور و یک ره و سفاسفه اصلا خدا اون امور بالا و بالا رو دوست داره و امور ترس و خدا دوست نداره این الله عز وجل یوهب و معالی الامور و یک ره و سفاسفه فقال کمیت یا تیوی اسألو که مسئله. و کان علیه السلام متکن حضرت به اسلام آلم داده بودن فستوا جالسن و نشستن وکستن و فی صدری و سادسن. یه متکا در سینشون سراشون شکون بین یعنی گذاشتن رو سینشون اینطوری نشست فمقال سر دبست فقال اسالو که انر رجلی عنوان صحابه میز خصوص اولی و دومی فقال اسالو که انر رجلی فقال یا کمه این تبنه زی ما او حریقه او حریقه هم شده جوری هم تلخیص ده یه بحث به هر بیش نشین ما او حریقه فلی اسلام محجمتون محجمه اون چیزی روی که سابقا باش کون میگرفتن سشاخ او. ما او حریقه فلی اسلام محجمتون مندمه احتمالا دن زارد باشه محجمتون دنه یا مندمه ولک تو سبه مالون من غیر حله غلا نکره فرج و فر حرام الا و ذلك فی اعنامه ما الی یوم یقوم قائما این درس این مطلب درس بود به نظر هر کسی که یک مذهب انحرافی رو گذاشت تا روز قیامت وقتی که از درگاه یعلا هر کسی که خیانت در گردن اون این این مطلبش بود و نحن ما معاشر بنی هاشم نعم و رو که بارنا و سبارنا به سببه ما و البراعته نمه ما اون حدیثی که برمیه همینه این هم از این هم نیست در کل روایات ما تنها حدیثی که داریم همینه اونم با عنوان صحابه دو نفر به خصوص این حدیث رو مرهوم کشی به شماره 361 همین با عنوانشم اینه فلک کومیتر زید عنوان بابشینه مرموم کشی در اینجا ده حدثم یه و ابراهیم این دوستان توصیف را توصیح شدن محمد ابن عبدالحمید ده حتی اینم خوبه ابی جمیله این تدریف شده انعبی حارس ابن مغیره اینشونم اهل بسرست دوزه اجبره از خواهد انعبی برد ابن زید اینه درسته میشنسیم قال قلطر عبی جهتر عليه السلام جهلنه الله و فدار قدمل کمی کمی خب شعر معروض این صاحب شعر قبی است خوب قلع آده است به نظر نگه شیعه نبود سومی خیلی او بالا میبونه چون شعر بسیار قوی داره این بسیاری که احتمال اینکه اشعر از همه شعرات این بسیار شعر قوی از داره عذابی بسیار بسیار شعر درجه داره است والا وارد دخل کمیت تنشم که طول می کشه فوال عدخه حضرت فرموزن بگو بیاد داخل فسعن در کمیت تعن شیخین این برات هم مثل همونه کمیت این متن دیگریست از شیخین پرسی فوال اونجا داشت رجاله اینجا داره شیخین فوال لکن اونجا امام صادق بود بله از توی اینجا در دخل کمیت تنشده و تس نبارده بذ حدیث قدس ابو عبد الله یعنی ابو عبد الله باشه فقال له ابو جعفر علیه السلام امام باخر ما او حریم دمون دیگه توش محجره نذاره ولای حکم یحکم به حکم غیر موافقن لو حکم الله و حکم نبی و حکم علی علیه السلام الا و هو به عنایه ما فقال الکومیب الله ها اکتر. الله ها اکتر حسبی حسبی برکه دیگه کابلیه. اون ذهبو توش نداره روشنش بود؟ نه رو این روایت کشی به دو سنده اوهرده این شاده واضح تو زرزون همه همه همه هیچ شفیق رضی نداره خودشام از زیادی که میفرمایید مصادره طویی از اصطلاح اند نه عرضی. این یعنی هر کسی که دارد از کتاب کشیداری کرده. این مصادره اصطلاح مصدره طویی اینا عرضه ادبیه دارند ولی میکنه که یه نصیه کشی بوده این معلولات را دادن میخوام. این کشی چاپیه ما نیست. دو نصیه خدیمم بوده. شوم بهار نکردم دیگر نکردم پس. پس اونی که الان ما در کتاب کشیداری در یک سال و مرد فقط اینه که هر چی بگم در راستم هست اصلا یه روایت بری در برسال هم شده که حضرت به شده بودنست چون رویه از رویه که از علمای مدینه بود ظاهران عمرانی این عمر از ماهو هم بزرگتر بود و مشهورتر هم بود رویه رویه از ابن عبیردار رحمان چون اولین کسی بود که ترخه رعی کرد ابو حقیقا پیشین درست کنده رعی رعیی گرفت مع روی هست رویه هسته باشه وقتمون کنه به علی عبدالرحمن از بزرگان بقای مدینه هسته دید معروفه هست. خیلی میشه که شخصیت لاقل بین اینطوری بوده حضر نشست در حلقه یک اونجا کسی بارش از رویه سوال کرد از رویه فرکای سوال کرد رویه جواب ده. فقال حقی اونغک تو گ دو دماتر سوال کرد باز جواب داد گفت عفی اونوقه با سکوت سمرده به سوال کرد جواب داد همین گفت عفی اونوقه احتماله که تعریفی در هم همین معنا باشه عفی اونوقه احتمالاً شخصیال رو نمیخواد اون معناش عفی اونوقه با سکوت فقال امام حسین (ع) صد ناه گفت ناهین به سکوتش نگاه نکن هر کسی که فتوا داد اون عفی اونوقه هست سکوت ام اطباء این سکوت به دست نمیخوره همین که بازه صدی شده خطباتا به بیگه نیست اینجا در اون روایت داره که این فیانوهه حالا بگه دلیانت که مهم نیست اینجا این روایت مثل هم مثل همون روایت هست پس انا نعم رو این متنی که خوندم و نحن و معاشر بنی هاشم نعم رو سقا کبارنا و سقارنا به سبه ما و البراعت من هم این البراعت من هما هم شواهد داره چون ما اون واضحه در خبر به دنبال شواهدی سبده ما شواهد نداره البراعت من هما حدیث سهی هیست اگر آن نگاه کردن در جهد دوی کافی بابی ایمان و کفر چون بباید داریم که بنیاد اسلام علاق ازا. یکی حدیث داریم از این نصب نهد رحمه قال و عمل اسلام حال سرس و با سومو کنا ول برای اصمان اعداء الله نیداریم عنوانه که یه حقارق دینی است برای اصمان اعداء الله این مثلا هم میشه قبولشه اما کلمه سبه ما چون منحصه به این روایته و به این مثل و شباره دیگه در مجموعه روایته تایید نمیکنه و انصافاً قبولش بسیار بسیار مشکلی مضافت که حالا خود کتاب کشی کتاب زیدیز و خود این سر هم خیلی مشکل داره خود نفس ابن سواه تذیب شده اصحاق ابن محمد بطری که نمی شدیم از ابو یعبو نه سر مقدار زیاده لابدیش ازشون نرخی این آغارم نمی شدیم فقط کشی گاهی گفته کانه من اهل ارتفاع ما شناسایی دیگه از محمد بطری نداریم نفس ابن سواه زاهر مال برخ بوده حالا به بحثه آمده، به راه آمده، به قوم آمده از مشاریخ رو در کرده از آن عرب کرده از شخصی بنامه ابو یعهوم اصحاقه به محمد بحثی توی یک کشین استخده زیاده همین حدیث بعدیش همین زنده است اصحاقه به محمد بحثی کن این رو نمی نمیشنسی در دو مورد یا سه مورد کشین گروه میگه میگه نم قانون اصبح سبان و کانه بایی احمد اختفا حالا حدیثم ها اصحابه محمد و کار من اهل ارتفاع در این کتاب موجودی که ما هم داریم به اسم کشی از ایشون به نام غالی نام شده من اهل ارتفاع ما غیر از این دیگه معلومات درست مثل نجاشی متعرض شده باشیم یا شیخ نه چون کتاب نداشت شده نجاشی متعرض شده. ما از ایشون معلومات درستی نداریم محمد این جمهور همیه بحثی همیه زعافه معروف. حد دستان هم بشار و شام به نظرم تصریف تو زهنم حضور ذهن ندارم داوود ابن نعمان شقدر از اجلاله این حدیث از داوود ابن نعمانه این حدیث به جای داوود ابن نعمان در حدیث قبلی ورد ابن زیده که نمیشه. پس حدیث به لحاظ سرد خیلی مشکل داره به لحاظ به اصلاح هم مشکل داره به لحاظ و شواهد و رواهات دیگر این هم مشکل داره یعنی صدر حدیث که هر وقتی که به خلاف رسول راه بشه مسئولیتش متوجه اون دو نفره که پای بزاری تنه این ثابت شواهد زیاده و قابل قبول هست این مسئله که البراه از الله این هم باید باشه شواهد هست اما صدبه همه این شواهد نداره خوده خرکه چون ما ارز کردیم. کار ما در حدیث شناسی دانه دانه انفاس رو بررسی میکنیم کدوم یکی شواهد داره کدوم یکی شواهد نداره اصولا خود این حدیث از امام باقی حسن اون ذهب کلن توش نیست فقط سر و که هر حکمی که بشه فی ارناقه ما حالا چون وارد این بحث شدیم برای اینکه یه مقدار روچندتر بشه و بعضی از نکات لطیفی هست چون نصر ابن سباه رو به عنوان مشایخ کشی اسم یه مقداری متعرض به بحث نصر ابن سباه هم بشیم به مقداری که توائد لطیفی داشته باشه بقیه بحثاش اینجا اینجای خود باشه اگر ببایی در مده مثل نجاشی و فیلت و چیم کنم که نه که خود این آوایات هستن خبره با حسابت بودن این هیش تباویی با مثلا در یک کتاب نوایی خب طبعا اون این وطوری که ما داریم چرا هم تمام نکات فهم میکنن بگر رو موانی آقایی که دنبال فقط سندر سندن بگرد راجع به نسل سباه من یک توضیح خدمتون اعرض بکنم خدم. مجا برشتید این فرص رو زیده یه اگر چند که دیره بعد اون مجز فرص رو این شوارد هم زیاد داره این شاید برای که دقیقه نه من چون در... قاهر بیرین یعنی احتمال نبیم که اضافه کرده راوی اشتباه چون کتاب اصولاً در قوضاهای ما نوشته نشده کتاب کشی شیلی شمیده شبار. غیر از کتابش اجمانات قدیه چون در قوضاهای ما نوشته نشده نسخش رو بعدها از سمروند و کش بردن به وقتا قرار اون مشکل داره یعنی یکم مشکل نوصه بعدم خود مرو نجشین رو که کتابو کثیر الاغلا اون کثیر الاغلا کتابو خیلی کثیر الاغلا است رو حیاثن احتمالیه که انجام بشه احتمال کافی نیست در احتمال هست در حد احتمال شده اما با احتمال نمیشه کاری بشه احتمال داره نه سیدی داریدین نمی حالا من راجع به نصف سواب چون این نکاتی هست میخوام عرض کنم چون گه گفتیم حالا دوستان میگن بیحالتون میگن یکم بحث اجاره را انجام بدین که آشنا بشین راجع به ببینید راجع به یک خان یک راهی با ما پیشنهاد کردیم تا در دروزه ها گفته نشده ما از اکثر هر شخصی که بخواید بشناسید سه راه داریم سه محور دارید یکی محور طهارته یکی محور کتب رجال یک مهور روایات این سه مهور داره این تقریبی که من گفتم و این تقریب و یا آنالیز روی که من میگم جهیب که وارد نشده از ما یک شخص در موا... کتب رجال یک مهور روایات یک مهور و کتب فهارس یک مهور حالا به چید نصر هم در این سه مهور به طور اجمالی نصر سواهم در کتب فهارس ما فقط در فهرس نجاشی آمده. در کتب رجال ما در کتاب رجال کشی مرده شیخ طوسی آمده و در کشی هم چند جا می کار ابن عبد الارتفا هم چند جا بی احتمالاً که شیخ توسی از کشی گرفته یعنی مثلا در رجال ترقیم مثلا نیامده کتاب‌های رجالی ما در رجال شیخ توسی آمده در فهرست شیخ توسی هم نیامده فقط در فهرست مرموم نجاشت آمده و کتاب رجال شیخ توسی و این رجالی که الان معروف است به کشی. و اما در رباید فعلا فقط تو کتاب کشی از زیاد داریم. فقط فعلا مثلا تو کتاب نیست. یه حدیث تو تا حدیثه که قریب المضمون در کتاب کمال و دین سبوغ آمده که توش نسبب نسبا اند بلخی داره که احتمال همین شخص باشه دقیقی میفرماییم؟ نصر ابن سباه برخی, برخی. یکیش هم داره نصر ابن سباه مطلقا ایش نداره در روالات هم منحصر به این دو مصدر دو دانه حدیث در کتاب به اصطلاع تمال آمده مقدار متناوبی مقدار زیاده در کتاب کشی آمده این حال نصر ابن سباه اجمالا در مصادر موجود ما و نکیجیگیری که مخاری بکنه این اتزای روشن بشه محور رو من توضیح دادم حالا یکی ایکی حساب بکن اما در محاضر محضر, محضر فحارس من تطریق همیچی نکنم میخوام بگن که بعد از این اینشان اگر بنامشه کارهای روی شدید کنید راه خوبش همینه این چون راه تا حالا کسی از آنطانجی که هم میدونم نرخش هم خیلی روشن میتونه حال افراد رو براتون روشن بکنید نه در که داره نصر ابن سباه بلخی آل المذهب احتمال داره که ایشون از کشی گرفتید چون کشی هم تصریح میکنه من این حقیل ارتفاع روا انحال ایاشی یکی از مغلقه های کتاب نجاشی همینجا شده ادهی از مزرگان مثل مرحوم های سالقاموز حتی آرخوی آرخوی آخرش تعدید میکنه که اشکال بکنه یا نه کنه اشکال کردن که این روا انحال ایاشی همیچی الا ما در کتاب کشی موجوده خصوصا در از موارد ا چطورشون میگه آقای علامه ایوشی این عبارات مرحوم نجاشی له کتب منظور میشه که ایشان بیش از یک کتاب باشه نه ها کتاب و معرفت ناقلی کتاب و خرق شیعه. هر دو بحث های تاریخی و بحثه رجالی هستند معرفت ناقلی فقه اسمی رجالی و به همین مناسبت هم عرض برو کنم اگه کردم دو نفر است نفر از آون ما هم دیگه این کتاب کشی رو بگیرم که آسان شدیه با کمپیوتر هر چی به وقت نصر در بیارن این جزی از کتاب فرقشیعی مخال آسول به سلوه معرفت ناقلی نصر این سباه این جزی از اون کتاب الان مقداری از اون کتاب در کتاب کشی موجوده معرفت ناقلی کتاب و فرقشی ما كشندره احبرنا قال قصي بن محمد بن حذيات قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشيئا ان هم یک مشکلی دیگه در اینجا درست میشه اون مشکل اینه که قال نجاش شما گفتید عمر ایاش خب اینجا و عمر کشی مگر اینکه نجاشی نظرش داشتی یک کشی راویه کتابه اما از خودش وانان حدیث عیاشی نحرکه داشت نمیدونم حال یک مشکل عبارت نجاشی که از یک طرف نقطه راویه کتابش از یک طرف نظره عیاشی چه وقتی عیاشی کشی باز بگیر داره داره شاید اون باشه روان های کشی باشه در و هر حال با این که در نصف نجاشی چاک شده این نصف در اختیار تندیه بوده می بوده و همه همه حیاشی نرشن احتمال داره که این جور در نیاد در هر حال یک مشکلی در کارش باشه رواهن های کشی اینجا محمد ابن عمر بن من عرض کردم یکی از مباحثی که ادهی مطرح کردم این تا حدی شده این نبوده مرحوم های توستری در کتاب آموز یک مقارنه های بین شیخ و نجاشی میکنه مثلا در اینجا میونه نجاشی در تهرس اسم این کتاب رو برده اما شیخ در تهرس اسم نبوده و تبی میکنه علم و تعریف شیخ نجاشی در فلسفه درست مثلا در این, این کار رو طوری که من دیدم قبل از مرحوم های توستری کسی نکرده مقایسه مابین نجاشی در مابین شیخ در تهرس و دکتر پروفانی خب در این کتاب بوده تو فارس بوده نجوش نعم تو حقش این بود که شیخ هم در فارس هستند این اشکالی اشکال که مرحوم آقای توستری کردن خوبه البته اشکالی نیست اینکه که آقای نیست ما مواردش جواب دادیم احتیاج به یک توضیح طولانیتر داره اجمالش اینه مرموم شیخ و نجاشی هر دو در بغداد بودند و استاد مشترک هم دارند، اما استاد انفرادی هم دارند و این استاد انفرادی از طرف شیخ خیلی کمه شاید چه دو سه هستند، هستن سه تا هستن که از ما نقر کرده که نجاشی از اونها نقل نمیکنه. اما بعد نجاشی از ادهی نقل میکنه که شیخ از اونها نقل نمیکنه کلا این قفلت نیست اون مستر در اختیار شیخ نبوده مثلا بعضی از مسادر بعضی از افراد کسا می که قبل از این که شیخ به بغداد برسه خود کردن کسا می بودن که فقط مثلا از ایران قوم آمادن بغداد که برن مکه نجاشی رو دیدن به نجاشی تحریص کردن شیخ رو ندیدن ممکنه قبل از ادهی از مشایخ در بغداد بودن نجاشی چون بچه بغداده پدرشم آله نگه از همون جوانی بزرگان رو دیده شیخ در سنین 23 سالگی به بغداد آماده اهل توس بوده سال 408 به بغداد آماده و از این نقطه رو خوب دفت بکنی بعضی جاها مشایخ مونحسرن مشایخ نجاشی هم. اگر غیر من احترام باشه دیگه شیخ از اونها نام نبرد یکی از اونها همین شخصه همین شخصی اسم بردن نه بن احمد نهبهی این فقط نجوشه شده شما شیخ ایشون درک نمیشه اصلا ما این آقا رو نمیشناسیم دروسته ما شرگلی یک خود ما هم این آقا رو نمیشناسیم دو اون اجازه ای که این آقا به نجوشه داده چیز فنی بی یه چون اصحاب ما مثل من اون دیگران تحلیل های فهرستی نکردن ببینید ابن قولوه که افره به محمد در اینجا ابن قولوه بیه. ابن قولوه بزرگان اصحاب ماست فهرستی هم داشته هم نجاشی هم شیخ توسط شیخ محفید از این فهرست نهبی میکنه دقت میکنه اینجا بشترکن با هم توسطه چون شیخ محفید شاگرد ابن قولوه بیه. لکن مرحوم نجاشی ترسط این شخص ابن حدیه از ابن حولبه نرمی میکنه از کشی اصلا محسن اینجا چند مورده در کل کتاب نجاشی چند مورده ابن حدیه از ابن حولبه از کشی این محسن بیش نجاشیه اصلا شیخ نداره کلا نداره پیش ما هم عجیب غریب این این یک دو ها هم نمیدونیم که چطور ابن قولوه از کشی کرده چون ابن در در قوم بودی تو تو بزرگمه هم خوبه ابن قولوه درد ابن قولوه ولو الان بر بر اصلش که آیا کشی بگم آمده ایشون از اینجازه که ایشون که خیلی درمانش نفوندیم به سمرگن رز رزه ایشون به سمرگن رفته دقیق کردیم اینها ذرافت کاره وقتی نجاچی این طریق رو میاره چون این طریق طریق عجیب قلیدیه ابن قولده از ازده بزرگان نعمل کنی شیر نعمل نام اون رو مرحوم مفید مثلا مرحوم مفید از ابن قولده از, ابن از ابن... کشی ن حالا این چیه من نمی فهمم. ببینید من همیشه گفتم ما یه چیزی رو می بینیم یه چیز رو تحضیل میکنیم. دیگه دیدنش الاز می بینیم اما تحضیل من ندارم از من بخواستن ندارم چی شده که ابن قولوه وقتی از کشی نرمون من سرش رو همین فقط داره ابن حدی نامیه از ابن قولوه از تشکی ما جایی چیگه نداری ابن از کشی نرمون ما از ابن قولوه در فهرست نصفت هم داریم عدوث مقدار کمه هم در فهرست شیخ داریم هم در فهرست ندرشی داریم اما در تمام اون موارد که شیخ محید نهارم کنیم یک مورد نداریم که ابن قولوه از کشی نهارم کن. خالی از تعجیب هم نیست البته کشی مشاعق قوم داره به احتمال قدید در سفر اینکه کشی به قوم آمده نیست. او به نهارم اکسش نی پس او تو پس این نکته نیست که ادعا تاعرض شه اصلا شیخ چنین اجازه ای رو نداره خلاصه‌ش اینه ما هم الان که دورا دور هستیم مهاجریم این چه اجازه ای ابن علی خودش کیست و این چه جور اجازه ای چطور این اجازه رو به مردم شیخ مفید نداده خب از نه نمی‌شه و ضا این از تعجب نیست اینخرار تصمیم انفرار منچهش اینه کو به خ ب کنیم نه تخلت شرفه این مضر در بسیارش نبوده از این نق نکرده تتمه کلام فرز شله و ص باان محم دا. یه روز اول و بر افتت در ال نبوده آن. خیلی داشی که منو برد بغداد در که معلومه دادا صاحب منم هست در بغداد بودم مشاهده کردم که در خیلی ممنون دعاشون خیلی کارساز میتونه